بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده یکتا ارزو سلام و درود فراوان دارم خیلات شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که همیشه نسبت به ما لطف فراوان و بیشماری داشتید افتاده برنامه ایزه میخوام که سال روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام محمد باغر علیه السلام باغر علوم رو به پیشگاه مقدس حضرت مهدی از جلاله تعالی فرج و شریف کنم و همچنین به پیشگاه شما بینندگان عزیز و مؤمن و شیعه شبکه جهانی ولایت هم سپاس خدای یگانه که ما توفیق داد تا بتونیم با یکی دیگه از برنامه‌های آین سلامتی در خدمت شما بزرگواران باشیم برنامه‌ای که اگر ها بعد از ساعت 19 شبکه جهانی ولایت رو دنبال کنید در جریان اون بودید تا این لحظه برنامه این سلامتی بر این منوال هست تصمیم داره که بر اساس آیات قران کریم و روایات ائمه اطهار علیهم السلام بتونه مشکلات و بیماری‌های شما بزرگواران رو حل کنه. امروز با شما این برنامه آین سلامتی هست که در خدمت شما وجدان و بزرگواران هستیم و همیشه مهمان عزیز و ارجمندی داریم. حضرت آیت الله جناب آقای زیایی کارشناسی ارشد حقوق، دکترای فقه و اصول و از همه مهم‌تر متخصص طب اسلامی. حاج آقا اراد سلام و خیر مقدم دارم. خیلی خوش اومدید. خدا شما رو با عافیت و генالد اون عزیز به محضر مبارک سلام عرض می‌کنم این بزرگواران خدای خیر امام زمان اشمول باشم در سایه رحمت خداوند متعال همیشه با عافیت و امنیت باشید خیلی متشکرم ممنونم خب طبق روال همیشه برنامه‌ی آینه سلامتی می‌دونید که ما ابتدا 20 دقیقه ابتدای برنامه رو در مورد این مبحث و موضوعی صحبت کنیم امروز قرار در مورد نخوردن سبحانه و نخوردن سهری یعنی گرفتن روزه بدون سهری صحبت کنیم که متاسفانه مبتلابه هستیم هممون و اکثر اوقات صحبونه میل نمی کنیم شماره تلفان های برنامه 3511 225 41 13 225 41 69 225 41 59 دوتا از شماره ها زیر نمیست می شه. شماره پرمک ما 359 ده هست شما با پرمکاتون واقعا ما رو شرمنده کردید پرمکاتون بسیار زیادی داشتیم این برنامه سعی می کنم. به من نزدیک سی تا 40 تا پرامک دادن همه متفاوت هست تازه این 30 40 تایی که به من دادن تفکیک شده و تکراری ها حذف شده امیدوارم که بتونن بخش اعظمش رو از خدمت مهمان عزیزمون سوال کنیم و شماره و یه نکته ای هم که حتما به این اشاره کنم و بعد برام سراغ سوالات اول برنامه شب که همیشه برنامه‌ها رو روی سایت میذاره چون متن برنامه رو چه خود فیلم برنامه رو آدرس سایت راست صد درصد دارید دوباره من میخونم www. وللایت تیوی. کام که انشالله اون رو هم زیرنویس میکنم بعد از دو سه روز میتونید اگر متوجه جوابتون نشدید اون جواب رو اونجا داشته باشید تکرار برنامه هم که فردا ساعت هلوش ساعت دوازده ظهر خدمت شما بزرگ تقدیم میشه. خبش این مبحث این که ما صبحونه متاسفانه نمیخوریم و اسخانه میرییم بیرون و یا بدون صحری روزه میگیریم خیلی مبح مهم مقدمتا در جواب فرمایش تعدادی از بینندگان و شناندگان عزیز. و بزرگوار از قرآن مجید و همین بزرگواری که شهادتشون فرا رسیده حضرت امام محمد باقر علیه السلام, و السلام که شقا فرنده علوم روایتم از این بزرگوار بگم مقدمتن بعد همین سوال شما را جواب در قرآن مجید به سه خطاب بحث حلال خوری و طیب خوری مطرح شد چه خطاب عام چه خطاب خاص چه خطاب خاصالخاص خاص. خطاب عام آیه 168 سوره بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اِنَّهُ لكم عَدُوب و مُبِين تمام مردم دنیا با هر دین و مذهبی که هستید خدای یگانه رعوف بالعباد به من و شما امر میکنه که خوراکی ها و آشامیدنی های حلال طیب مصرف کنید ولا تَتَّبِعُ خطوات شَيْطَانِ و قدرت شما برای عدم پیروی از خطوت شیطانی و مذاهب ساختگی به دست افراد شرور در شما این توانایی ایجاد میشه با حلال خوری و طیب خوری اینهو لکم عدو مبین شیطان رجیم و جنودش و دشمن آشکار شما هستند، پس جاهلانه و قافلانه یا به دیکته اجانب افراد شرور آدم نبود خوراکی و آشا باش. باشه این خطاب عام خطاب خاص به همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمانان عزیز آیه 172 سوره بقره یا ایوهالذین آمنوا کلومن طیبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ای مؤمنین و مؤمنات کسایی که باورهای صحیح دارید از پاکیزه های روزی هایی که برای شما مقدره از طیبات تناول کنید با توان شکر عملی خداوند متعال را داشته باشین و یگان پرست باشین ندارای تعداد آله و مشرک به شرک عملی یا خطاب الخاص هست آیه پنجه و سوره مؤمنون یا ای هر رسلو کلو من الطیبات و عملو صالحا اینی بما تعملون علیم ای رسول الهی که سی تا رسول داشتیم که علاوه بر اینکه که نبی بودن وزیفشون تبلیغ صحیح بوده ای رسول الهی از طیبات مصرف کنید و عمل و صالحا تا توان انجام اعمال صالحه از جمله تبلیغ صحیح به جا و به موقع خدا پسندانه داشته باشید خدای متعال به تمام کارهایی که انجام می دهید بسیار داناس. حالا شکافنده علوم امام محمد باقر علیه السلام من و شما رو موعظه کرده ما چهارصد اصل فقهی در شیعه اصناعشری داشته ایم از این 400 تا 16 اصلش رو که همش صحیح و موسقه سلسلی سندش آقای ویاددین المحمودی در کتاب الاصول 16 من الاصول الاولیه آورده در صفحه 218 به نقل از کتاب جعفر جعفر ابن محمد ابن شریحن الحضرمی از جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب سر صادقین و باقرین علیه هم السلام روایت میاره که قال این جابر ابن یزید جعفی که قال ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام من اراده انیو يطيب الله جسده هر کسی که اراده صحیح داره که خدا یا متعال پاک و پاکیزه قرار بده جسد او را یعنی جسمی که دارای رمان و روحه رو پاک و پاکیزه قرار بده پس ای انسانی که فائل طیبا خوراکی مصرف نکنه مگر پاکیزه باشه یعنی قضا ریز بهداشتی سالم تازه حلال پاک طیب پاکیزه چون طیب به منزله سده تمام رده های قبلی هم هست پس هر کسی که دوست داره جسدش پاک و پاکیزه باشه پس خوراکی آشامیدنیش هم باید پاک و پاکیزه باشه فلا یاکل الا طیبا فَإِنَّ الله یقول فی کتابه بعد حضرت اشاره میکنه به همین آیه 51 سوره مؤمنون که خطاب خاصالخاصه خاصم در تایید این بزرگوار که فرمودن از آیات و روایات به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام یک روایتی خدمت این بزرگوارا خونده باشه سؤالی که مطرح شده اینه که اگر کسی یا کسانی به صورت عادت زشت در اونها در آمده و غالبا سحری نمی یا صبحانه نمی این کار خوبی نیست و روایات اسلامی نهی کرده و آخرین پیشرفت های علمی دوازده بیماری ذکر کرده. کسایی که عمدن تکراراً سحری نخورند و یا صبحانه نخورند از جمله روایاتی که در کتب شیعه هست که اینجا حاشیه زدیم در کتاب مرئات الکمال لمن رام در که مصالح الاعمال مال آیت الله مامقانی اعلی الله مقامه سه جلد جلد یک صفحه 171 تا صفحه 230 الفصل الرابع فی آداب الکل و شرب و متعلقات ما و فی مقامات تا می رسه به اینجا و قد ورد ان لغمت الصباح مسمار البدن که و تحقیقا یک لغم قضا یا ریز با همه اون خصوصیاتی که قبل گفتم در پگاه در صبح زود یعنی همیشه اول آفتاب بهترین زمانه مصرف کردن استواری چار ستون بدن بر اوه مثل رول بدن و در بحث کتاب های محاسن برقی جامع احادیس شیعه آیتالازما برو جردی وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد شونزه مستدرک محدث نوری حتی کتاب وصام مال وصال شیخه ال عاملی کتاب سام جلد هفتم چاپ اسلامی تهران در همه این موارد بحث سحری خوردن هم مطرح شده و از بس تاکید کردن حمله بر مستحب مؤکد میشه ولی باز هم با همو خصوصیاتی که قبل بیان کردیم حالا در این رابطه که اسلام رعوف با پیغمبر رعوفش و کلام خدا که خدای رعوفه تأکیده و سحری خوردن و صبحانه خوردن صبح زوده اگر کسی سحری عمدن نخوره تکرارن صبحانه هم عمدن نخوره و این به صورت عادت زشت در باشه و تکرار بشه در روزای متعدد دوازده بیماری میاره اینها را بینندگان و شنوندگان عزیز اگر یادداشت بفرمایند بفرماین برای خودشون و خانوادهشون و همکاراشون مفیده یکی از عوارض سوش اینه که یوبوسط میاره به اسطلاح تخصصی گوارش و فوق تخصصی کبد سهری و صبحانه زود خوردن خودش هلدهنده طبیعیه و کمک میکنه به حرکات دودی شکل روده بزرگ سبحان سحری نخوردن امدن یبوست می آورد. دوم تحلیل قوا می آورد یعنی بدن رو به ضعف میره و کم کم دچار ضعف شدید میشه تحلیل قوا در اندام مخصوصا اندام حرکتی حتی تحلیل قوا از حیث روان تو بخش حافظه به نوع برداشت اطلاعات از حافظه موقت یا کلاسه کردن اطلاعات در حافظه اصلی و در مورد نیاز برداشت از او ضعف حافظه میاره سحری نخوردن تکرارن صبحونه نخوردن تکرارن ضعف حافظه میاره مطلب سوم افسردگی می آورد. در اوایل امر افسردگیش به نوع عادیه یعنی سرماخوردگی روانی اگر این ادامه درش پیدا کنه به صورت سنت سیعه و قلط کم کم حاجقا افسردگیش درونزا میشه مطلب چهاران صبحانه سحری نخوردن و این تکرار بشه. چربی های مزر خون زیاد می شود یعنی کلسترول بد LDL و همچنین تریگلیسیرید خون بالا می رود. مطلب پنجم کسانی که اهل تحقیق و پژوهش و یا دانش آموزای عزیز راه دبیرستانها، دبیرستانا عزیز طلاب عزیز فاضل نور چشم ما اگر صبحانه و سحری عمدن در زمان خودش نخورند و این کار رو تکرار کنن در انجام تکالیف محوله آموزشی کم میارن و اکثرا تکالیفشون رو به آخر نمیرسونن چون زود خسته میشه یعنی دوچار خستگی ذهنی میشن مطلب شیشم خود سحری نخوردن خود صبحانه نخوردن خودش عاملی برای چاقی یک سنت قلطی که تو بعضی از افراد هست اینه که عمدن سحری یا سبحانه نمی آفرین درست معادله برعکس میشه چون در وعده های دیگه شروع میکنه به پرخوری و بیشتر از نیاز مصرف میکنه مطلب هفتم سهری صبحانه نخوردن عمدن و این عادت زش رو تکرار کردن اوره و کراتین خون بالا میره یعنی خون ترش بلغم سیاه اسید اوریک خون که نمک سمی خونه میره بالا و این عوارضی به دنبال داره از جمله نقرس بیماری MSU از جمله کمکاری کلیه ها مطلب هشتم سحری و صبحانه نخوردن ضعف اعصاب می آورد حال اگر بدخوری هم کنه استرس هم داشته باشه نگرانی مستمر زعف اعصابش کم کم از خفیف تبدیل به متوسط و شدیدر شدید شدید می شه مطلب نهم صبحانه و سهری نخوردن در طول زمان رعشه می آورد و لرزه می آورد. یعنی حرکات غیر اختیاری در اندام مثل سر و گردن دست ها و پا رخ میده و با تیک عصبی فرق میکنه دائما می لرزه لرزش غیر اختیاری با اینکه تب شدید نداره عفونت داخلی نداره تیک عصبی نداره این به خاطر اینه که هم فشارخون خون افت میکنه هم خون زیر نوت میاد تصاحب فهم بودیم و بعضی مسائلی که در سینابسای عصبی رخ میده حالا اونا باشه بعدنا پس اگر کسی صبحانه و سحری نخوره تکرارم و به صورت عادت زشت درو باشه دچار رحشه و لرزش اندام حتی در بعضی افراد دیده شده لکنت زبان اومده درسته. لکنت زبان به صورت عارضی. نه جنتیکی حالا اگر زودتر زودترین 12 تا رو تمام کنیم چند تا پرمک در مورد لکنت زمان بوده چشم, چشم. جواب میدم مطلب دهم بی حوصلگی می آورد بی حوصلگی می آورد سبحان سهری نخوردم مطلب یازده دهم ذریب یادگیری انسان در آموزش های صحیح افت میکنه. کنه ذریب یادگیری شخص کم میشه. مطلب دوازدهم سبب کاهش هوشیاری میشه من در خدمت شما بینندگان عزیز هستم فکر این موردی که شما گفتید باعث شد همه دیگه رأس ساعت 6 و نیم بیدار بشن و صبحونه رو بخورن اگه بخوام بعدش بخوام ولی صبحونه رو حتما دلد. و سحری رو صد درصد میل کنم خب حواجا من برم سراغ پرمک خیلی پرمکای زیادی داریم اولی میپرسم دو سه با سلام جوانی هستم 34 ساله که مبتلا به MS هستم متاسفانه به این علت همسرم رهایم کرده و مجردم به افسردگی هم مبتلا شدم چه کنم جو فقط جواب ها رو و مفید که به همه ماری MS تسالب شرائین متعدد مغز باید اون وقت قلیزت خونت رو درمان می کردی. اگر گردش خون در مغز ضعیف بود او رو درمان می‌کردی تسلب شریان‌ت رو با مصرف آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم و هر وقت تخم مرغ و کوکو میخوردی با پیاز میخوردی تا دچار تسلب شریان نشی و بعدش هم باید تو جیره با نهار شام کاهو میگذاشتی کاهو بدون سس و مطالب ای هم هست. ولی شون شون بکنم بکنم یه برنامه برسیم به خود یه دارن. برنامه قشنگ در رابطه با بیماری اعصاب و این چیزا توضیح. الان این مواردی که گفتید رعایت کنم فکر کنم براشون خوب باشه باده که دارو بخورن. بله بله. ولی الان ضعف اعصاب دارم، ترسوجر میشن افسردگی دارم، برای تقویت اعصابتون تو جیره غذاییتون عسل طبیعی بذارین به نوع عسل‌های گرم مخصوصاً عسل نعنا عسل آبیشن حتما تو جیره صابونتون باشه در هفته یکی دو بار ناهارتون خاویار باشه اسرانه آب سیب انگور سیاه مخصوصا میوه آناناس باشه و وقتی هم شب سوپ رقی خوردین درونش آب بریزیم و وقتی که ماست شیرین کمچر و یا دوغ شیرین کمچر چرب خوردین درش آویشن و نعنا بریزین بریزی اینا تقویت اعصاب مال درمان افسردگی تون گل رائی که چای کوهیه و خارجی ها میگن هو فاریقون از رسته داروهای دپرسانت چند دونهش یا پودرش یه قاشق چای خوری کافیه یا قطره های پیران 25 قطره در یه لیوان آب ساعت صبح شیشانیم بخوریم قبل اینکه برن سرکا شبها هم گل ساعتی یا قشد چای خوریم یا قطره یه پاسیپی بیس پنگ الاسی پنگ قطره در یه لیوان آب بخوریم تا کلیک رودش هم که پاس عصبی روده هست به هر چند روز دست دستجی بزرگ تیکه تیکه میاد با درد میاد با تاخیر میاد اون هم خوب بشیم انشاءالله متاسفانه صف 911 7848 گفتن که همسرشون اتیاد برای درمان اولیه چه کند به محضر مبارک این حضرت آقا از شود که سموم ناشی از مواد دخانی و مواد افیونی و قرصهای روان برگردان را میتوان به پونزده روز از بدن بیمار بیرون کرد به اینکه که وسط روز یک لیوان آب پرتقال شیرین عصرانه یا اول مغرب یک قبول. لیوان آب شیرین. این هر روز باید بخورم جدا جدا بل. گفتید که برنام قبل گفتیم با هم باعث سم میشه حفظیم جدا جدا ظرف پونزده روز سموم از بدن دفت میشه اما بیماران معتاد سه جورم تو تخصصی روان شناسی و درمان اعتیاد به خاطر اینکه که ها و شوق به مواد دخانی و افیونی فرق کن در بعضی ها ماه طول می تا شوق و میلش به ماده افیونی برطرف شن. در بعضی مریضا یک سال در بعضی مریضا دو سال شما همسر گرامی مواظب باشین فامیل بد باش خفته آمد نکنه، دوستان ناباب نداشته باشن داریم میگیم مواظب باشی یعنی احتیاط عملی کنی نه اینکه سوء عزام داشته باشی نه اینکه ناموستو زندان کنی نه اینکه اذیت کنی جوری میگیم احتیاط عملی کنی که نارسایی های براش دوباره پیش نیاد رساله رو میگن کوتاه‌تر کنیم چش. که همه رو بپرسیم هم با سلام بیماری تپ مدیترانه دارم درمان این بیماری چیست لطفا راهنمایی کنید 0914 8381 82... از اقسام تب که شهست نوعه شما میتونید با ضد تبها و آنتیبیوتیک های طبیعی درمانتون رو تسریع کنید. از رقیق شده صبحگاهی، آب شلغم در بین روز و آب سیب شامگاهی. درسته اینم تو جنوب شرق کشور تو بعضی از جاها شروع می‌کنن بله بله بندر بوشه دوست. بندر عباس درسته مثلا گفتند که 09384137 گفتند سلام خسته نباشید برای درمان جوش و لک‌های آن چه کنیم هفتهی پیشا جوش اشاره کردید خیلی کوتاه یک اشعه دیگه بکنید که برای حتماً باید اگر در سنین جوانی هستین آب باید به مقدار لازم مصرف کنی آب جوش به مقدار لازم مصرف کنی چیزایی مثل مواد نشاستهی برنج، ماکارونی کوکو سیب زمینی یا سیب زمینی، اگر میخورن حتما باش سبزی خوردن یا یه پرتغال یه لیمو یا چند برگی کاهو بخورن درست همینا کافیه بله این جوش ها رو نباید باش بازی کنید قالبن قرشیه به هر جای بدن بزنید جوش بیشتر میشه فشارش نباید بینید جاش لک میشه جونش نباید بکنین جاش چوله میشه، گود میشه و جاهاش اگر که کمکی شد گفتیم چلغوز خام روزی یه قاشق پلو خوری بخورم صف 9384137 گفتن که برای درمان زعیفی چشم چه کنیم؟ تو من فهم کامیشون زعیفی اگه آستیگماد باشه که هیچ کارش نمیشه کرد ولی بعضی ضعیفیه بله بله که بله. همینجوری وجودی شما صحیه تو بحث آستیگمات. طبق پزشکی جدید فرمودی حرفتون هم درست. همون از نظر پزشکی اسلامی هم آستیگمات همون هم درمان میشه و اون چی مومن حلیله سیاه ما مریضای مراجعه کردن و بعد از یه مدتی خودشون دوباره خدمت دکترای محترم چشم رفتن خود دکتر گفته دیگه نمیخواد عینک. بزه. نمونه ما م رو روزی, روزی دو عدد روزی دو عدد حیله سیاه. چه موقع؟ تو 24 ساعت سر ساعت بخوره حالا هر ساعتی که میلش میکشه با فاصل زمانه 24 ساعت یک با 24 ساعت یک بار. بله. دو عدد حلیله سیاه چند خوبی داره ها جواه هم نور چشم رو زیاد میکنه هم استیگماتیک خوب میکنه هم افرادی که سنشون سن زیر 60 ساله بدون اینکه رنگای شیمیایی بزنن کم کم رنگ دانه های موشون بر میگرده شیلی عالیه بز اونایی که تنبلی روده بزرگ دارن کم کم مزاجشون ملایم میشه اینها رو علی اکبر سقاباشی تو کتاب نجات از مرگ مصنوعی و یا تو کتاب روایی تو بحث هلیله اهل دیات انشاءالله بعد. خب حاجا گفتند که 09135563 پنج فرمودن آیا لکنت زبان مادرزادی حالا من نمیدونم یا گفتن لکنت زبان مادرزادی؟ درمان چه میشه برای درمانش چیکار لکنت زبان بر چند قسمه گاهی لکنت زبان مادرزادیه منذارت میخوام لفظم بد بشه هنگامی که زن و شوهر در هنگام سلام علیک خصوصیشون که هر دو دوست دارن اولاد دار بشن علای برکت اگه اگر پرحرفی کنم، زیاد حرف بزنن تو شیه و وسایلشیه جلد چارده روایات داریم و کتاب دیگه حتی در بحار علمه مجلسی بحث اولاد میگه بچه دوچار کربلال مادرزادی میشه پس این رو همه مردم دنیا دقت کن مطلب دوم گاهی لکنت زبان به خاطر زعف عمومی شدیده یکیش امروز توضیح دادم صبحانه و سحری عمدن نخوره و این کار رو تکرار کنه و به صورت عادت زش در او باشه یکی از عوارز دوازدهگانش بله، لکنت زبان من گفتم پرمک بله. مطلب سوم گاهی لکنت زبان به خاطر اینه که ما به فرزندمون یا به دیگران اجازه صحبت نمیدیم. استرس کازب در فرد ایجاد میشه و خیال میکنه عددی نیست پس به فرزندان خودتون و فرزندان دیگران اجازه صحبت بدین. حرفشون رو قطع نکنین، تو حرفشون نپَرین. بذارین حرفشون تمام بشه. که استرس عارض نشه بر اولاد و به صورت یک نارسایی رفتاری دلش در نیاد، یعنی خودشو دست کم نگیره. نه، شما فتورت بدین. آفرین، احسنت. حس اعتبار به نفسش و جرأت سیح در او افزایش پیدا گاهی مؤمنا لکنت زبان آریزیه خلزت خون بالا چربیای مضر خون بالا پرخوری تن پروری و عدم تحرک لازم بدنی اهل نرمش و ورزش هم نیست این افراد کم کم دچار لکنت زبان میشن و اگر خدای نکرده لخته خون در مغز بیاد و یا فشار, فشار اضافی مایه روی عصب هفتم یا صورتی باشه کم کم پلکشون میافته چونشون کج میشه لکنت زبان میگن اندام حرکتشون دیگه در کنترل خارج میشه از کنترل خارج میشه. پس در این موارد باید چیکار کرد زود غلظت خون رو درمان کرد با چارلیبان آب، چارلیبان آب جوش، سننا کم باشه کمتر میشه بعد به شما از شرعت که زرشک خام، آلو خارا، تمشک، ریباس، اننا حالا هر کنم در دست رسیشون بود خونتون رو وقیق کن چربیای با ترانس بالا نخوریم تن پروری نکنیم پرخوریتون رو فاکتور بگیریم تو زندگی شهر نشینیم مخصوصاً تحرک لازم یعنی پیاده روی آرام در هوای آزاد در سطح مستمی مستوی هر روز نیم ساعت الی یک ساعت داشته باشین در 24 ساعت دست. تا این عوارض سو پیش نیاد گاهی هم لکنت زبان هاجوقا به خاطر بعضی مسائل آریضیه از حیث آلودگی خونی حالا بخوایم هم خونشو تصفیه کنیم هم سلولای مرده خونی شد تو قبرستان بدن که سپرز و تحاله دفن بشه و هم لکنت زبان بچه باز بشه و هم فرزند زودتر به سن شبابی و جوانی برسه تو روایات شیعه از امام صادق علیه السلام با چند سند داریم که رمان الحلب آب انار شیرین به کودکانتون بده. فصلایی که انار شیرین بود یک استکان آب به انار شیرین تو 24 ساعت یک بار میده فصلایی که نبود یک قاشق پلوخوری خوری رو به انار شیرین درست داشته به جون امام صادق علیه السلام خب اه... ده عدد از پرامکان موند که انشالله برنامه بعد مجدد میپرسیم. همونطوری که بعددادی بودیم سی دقیقی برنامه رو سوالات و صحبت های حضرت حاجه ها رو میپرسیم ازشون و جوابشون گرفتیم. و انشالله که امیدوارم این از که سالها رو پرسته بودن برنامه رو ببینن و جوابشون گرفته باشن. طبقه معمول تماسه بسیار زیادی داریم. شما تماسه رو من اعلام م ص همینطور که بزرگان و دوستان از اون زی نویس میکنن. شماره پرکن برای سال پمکاتسه پنج هست قول و بعد که در برنامه قبل دادیم هم که سی دقیقه به برنامه اضافه شد فقط پاسخ تلفن شما بزرگ بود. ما رببالمون این شکلیه که چهار تا تماس رو می‌گیریم چهار تماس رو سوالار من نیاد داشت میکنم از محضر استاد گران قدر میپرسند میشنویم و بعد میریم سراغ باز چهار تماس بعد یعنی چهار تماس گرفتیم دیگه تماسی وصله میکنیم تا اینکه چهار پاسخ رو بگیریم گفتم که در جلال باشید و مشکلی و تو چیزی به وجود نهید خب اولین تماس رو میخوایم داشته باشیم آقای معماری از شهر کرج دوستان اتاق فرمان رو وصل میکنند و سؤال ایشون رو میشنویم خب من یک بار دیگه تماقی که استعاضت شون قرشون من شما تلفن ها رو یک بار مجدد اعلام می کنم دوباره و تکرار برنامه مصاحم می کنم خیلی سال کردید فردا ساعت دوازده هلوی 1158 1159 برنامه به وقت تهران شروع میشه خط بعدی فقط نمیدونم چه عزیزی زیاد برای من کردند کردن بله خدا خوددادی از اسوان سلام شبکه جهانی ولایت به فهمت علیکم. سلام علیکم صداتونو داریم سوالاتونو بفرمایید برای درمان لوپوس و برای درمان که درزی که اینا درمان لوپوس متشکرم از تماستون خیلی ممنون تماس بعدی لطفا دوستان اتاق فرمان وصل کنن من فهم کنم سوالشون همین بود درمان مورد لوپوس اچ بله اینا باید به یه متخصص قدرت مراجعه کنن حالا اینو بذاریم متخصص بیماری های زنان بیماری زنان خب اینا پاسخشون رو مستقیم حضرت استاد اشاره کرد. خب تماس بعدی رو اگه دوستان اتاق فرمان به من اعلام کنند، اگر که تماس هنوز آماده نیست و نمیتونی چون تعادل هورمونیش حجب به هم خورده، این باید تعادل استروژن زنانه ایجاد بشه. درست بخ اینا تستی که خدمت دکتر محترم بدن، بله، چیه متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت یا متابولیسم یا هورمون یا بحث متخصص بره. بافت پاتولوجیست و اقلن خدمت یک متخصص بیماری زنان برن چون گایی یا اسیگی زود اختلالات هورمونی، مخصوصا هرمون های زنانه یکی از علل لپوسه من. خانم سیادت از تهران پشت خط بودن که حالا آجابا پاسخ زود دادن دوباره خط به من دادن بله خانم سیادت سلام عرض میکنیم شبکه جهانی بلایت بفهمید. خانم سیادت خانم سیادت صدای گیرندتون رو ببندید و صدای من از تلفن داشته باشید هره. در خدمتون هستیم صدای رو ببندید روی آنتنید سالتون بفهمد خانم سیادت بله بله صداتون رو داریم بله ما بله. سلام عرض میکنم خدمتون سالتون رو بفهمد بله بله, بله. بفهمد باشه چاش. من چند ساله آقا چند ساله که آسای دوماتایی در درستان درست می کنه بله بله چسد. بعد الان تقریباً تونزد شونزد ساد هست که زرستون که میشه یا یک کمی هوا سرد میشه من دستم تا باید بخوره یا یخ کنه انگوشتهای دستم تا برسات کفه دستم سفید میشه این دستم مرده اصلا اگاه دیگه خون توش نیست به. متشکرم از تماستون من یک نکته قبل از اینکه تماس بعدی رو دوستانمون بس کنن لطفاً اول صدای گیرندتون رو ببندید وقتی که اتاق فهمان میشین به فرمان اعلام می‌کنند به استدیو حتماً صدای گیرنده رو ببندید و صدای من از تلفن داشته باشید که این زمان رو ما از دست ندیم که شما بخواید از گیرنده صدای ما رو داشته باشید و بتونیم مجدد. به بقیه سوالات برسیم خب سه چهار تا سوال همون که قول به خدمت بینندگان آره همه رو جا من خدمت از تعالی و جواب‌ها رو می‌گیریم مجدد از کجا آقای احمدی از شهر شیراز. آقای احمدی سلام شبکه جهانی ولایت به فهمت؟ اردو سلام آنی کش. سلام, آلیکا. سلام, آلیکا. سلام آلیکا. سلامت بشی من اوجدن یازده سال پیش، بله. اوجدن یازده سال پیش، دچار به خاطر ریاضتای سنجینی کشیدم جددم، ابادتای سنجین، روزای سنجین بدون افطاری و افطاری میگویم یه روکشله خورما، سرانه بدون سری، یک سال خورده، تو بیماری شیزوفرنی شدم، علائم بالای منفی. بعد. همراهی افسر البته بعد چند سال بعد گرفتم. کمعیم کمعیم از اون چه ابسوردگی موضوعی رو من گرفتم خاطر مشخصا من تون کمکی هم کردم از نظر طب اسلامی اینا کمکی راهی هست برای درمان من دوست خیلی متشکر ممنون چاش حتما سوالتون رو می‌پرسم تماس بعد بله خانم محمدی از تهران این یک تماس دیگه هم واسه که چون خدایی رو پاسخشو دادن آقای زیایی خانم محمدی سلام خسته نباشید شبکه جهانی ولایت بفرمایید سلام خسته نباشید من از تهران تماس بله میگیرم مجاکر... چهار سالانه الان چند سال از مشکل اینکه که لاغرم رنجم. یعنی 12 15 کیلو وزن دارم به هر کاریام کردم چاق شدم ولی بعد بازم برمگرم به وزن خودم خیلی لاغرم بله متشکرم ممنون و چند روزم از اصلا میل به غذا ندارم یعنی اصلا نمیتونم بخورم به وزن نه سلام, سلام علیکم سلامت بشین بفهمین بنده مرضی های زیاده دارم. ولی خب الان یکیشه میتونم بگم من بروساد بله. بزرگه بعد چسبندگی مزرهای ادرال دارم بله کلی هم هم یعنی تا گست ادرا آور نخورم در شونه چش. ممنون چشم که خداوند شفا عنایت کنه خب فکر می‌کنم با این سوال دومی که پدر سرکار خانم محمدی و آقای محمدی پرسیدن سوالمون شد تا چهار عدد بلد. و ببینیم پاسخ حضرت حالی آقای سیادت که اشتباه نکرد خانم سیادت از تهران پرسیدن چند ساله که روماتیسم دارن بلد. 15 16 سال هم از وقتی هوا سرد میشه بلد. دستشون سفید میشه بله حضرت خانم شما باید گل بنفشه معطر که تو روایات البنفسج این رو در پایه روغن بادام تلخ بجشونین بعد از بیست بذارین هر روز این قسمت هایی که درد روماتیس می داره با این روغن گل بنفشه معتر که تو روغن بادام تلخ جوشیده با این ماساژ بدیم در درمان روماتیسم ها مخصوصا مفصل همچنین باید روزی یک قاشق روغن گل بنفشه معطر بر پایه روغن بادام شیرین یا روغن زیتون یعنی تئینا 20 دقیقه جوشیده روزی یک یه قاشق از این میخواییم حالتون خوب میشه با امید خود آی محمدی از شهر شیراز گفتن حدود یازده سال پیش به خاطر حالا اون ریاضت ها کشیده بودن و روزهایی که بدون سهری و بدون افتار بهم. حتی گرفتن شیزو فرنی گرفته بودن با علائم منفی دوچار افسردگی مزمن هم شدن درمان شما بزرگوار اینه که اسانسای شیمیایی نمیخوری؟ چیزای تند و تیز و ترش نمیخوری ترشیجات لیته بندری سس فلفل فلفل فل اینا نمیخوری برات سمه تو جیره غذای صبحانه شیر عسل که خوردین بعد یه 20 دقیقه‌ای که گذشت قبل اینکه بری سر کار یه قاشق چای خوری پودر سمبولوتیک و یه قاشق را بخوری اصل قاطی کن بخور شبها قبل از خواب یه قاشق چای خوری گل ساعتی باز قاطی اصل کن مصرف کن افسردگی مزمنت و این حالت ها خوب میشه به شدی که اون پنج تا اول که برای ضرر داره تر کن خانم محمدی پرسیدن که 24 ساله هستن مشکل لاغری دارن 15 کیلو کم بوده وزدارن یک بار رژیم بله. چاق شدن رو شما گفتید بله خیلی پتاح به اینم دوباره بله. اشاره کنیم بله. اگه برنامه را دنبال می کردن بله. قطعا این به این نکته پی می بردن کتاب تبل معصومی حاشیه زده بودیم مومنا که برای چاق شدن حتی روایت از آیشه بله بله باید. حتی از اون آوردم روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت هرچی این دکتر اون دکتر رفتم چاق نشدم آخر رفتم پیش رسول الله شکایت کردم بعد حضرت فرمود قطع با روتب بخور یعنی خیار تازه ای با خرمای تازه بخور بعد میگه من اینو عمل کردم پس تو چاق شدم چیزایی دیگه هم چیزهای دیگه هم بود مثل انجیر هفت عدد مغز بادام زمینی بدون پوست سورتی رنگش هفت عدد بعد بادام شیرین درختی هفت عدد یعنی از هر کدوم هفتا و ستا ستا با هم به جاوه قرد بده بحث انیسون بود بعد چیزهای دیگه هم که تا هفتا مومن ها شماردم از رو کتاب برای شما حواشیر خوندم و من فکر میکنم که خانم محمدی اگر مراجعه کنن حتما به سایت برنامه بلده بلده. دوستان متن برنامه دو تا برنامه قبلی رو گذاشتن داخل اونجا رژیم رو به صورت کامل حضرت پجابا فرمودن بله اینجا صفحه نوت از کتاب تبول معصومین دکتر لبی بیوون اینجا حاشیه زرن موامنا مثلا حتی خوردن یک تا دو لیوان آب خوردن یک یا دو تا انار شیرین یا یک لیوان آب انار شیرین یا یک قاشق پلوخوری رب انار شیرین این هم در درمان لاغری و نحیف بودن مفیده این از فصل پاییزه صفحات 27 و 77 از کتاب انار درمانی تعلیف مهندس شهرام مقصودی یک کتابه همچنین مومن مال قالت آعشه سمنونی به کل شیعن فلم اسمن و فسمنونی بالقصه و روتا این که گفت. گفت همچنین خوردن بادام میشین درختی با بادام زینی با انجیر مطلب بعدی مربای گردو با اصل برای فربه شدن خوبه اصرار گیان داروی احمد حاجی شریفی صفحه 938 مصرف کنجد مخلوط با بادام شیرین درختی و شکر زرد خوزستان تبرزد این هم توی کتاب گیهان دارویی تعلیف کازم کیانی صفحه 169. به شما از شود که چهر روز صبح هر روز انجیر رو با انیسون که با دیان سبز مصرف کنه این هم فربهی و چاقیه خوردن رازیانه آبی همچنین دست پدر خانم محمدی هم متاسفانه اینشالله که خودواندم شفاشون بده گفتن که مریضی های زیادی دارن پروستات بزرگ پروستاتشون بزرگ هست چسبندگی مجری ادرار دارن و کلیه تنبل هست اگر قرص محسوس اینجا باید هم چیزایی که فعال میکنه کلیه را به کار ببرن و هم تمرم پروستاتشون رو کاهش بدن تا مانع خروج ادرار و بال نشه شما همزمان میتونه عمل کنه تو خوراکیا ها به طیخ خربوزه تو روایات اسلامی اومد خب؟ این به طیخ رو مصرف کن بهترین زمانش میتونه قبل قضا باشه هم مدره هم معده رو پاک سازی میکنه بعد از قضا باشه یک قاچ خربوزه به عرض دو بنده انگش با پوستش مصرف میکنه شما سه شب بعد از شام یک قاچ خربوزه با پوستش مصرف کنین پروستاتشون آجام برمش میخواه از قرص های شیمیایی پرازوسین که لوزی شکل یک عدد قبل خواب میخورن از اونا قوی تر حتی از فینا سیتراید که شیمیایی اگر احتمال سرطان پروستات باشه اونم به نوع خوشخیمش دکترای محترم دو عدد میدن میگن یکی صبح بخوره یکی شب باز ای قوی تره بعد از سه شب که راحت شد مجرای بول حالا بعد از او فقط یه قاچ خربوزه میخوری دیگه پوستش نمیخواد بخوری زیاد هم نباید پوست خربوزه بخوری سممیه مصمومیت میاره سراغ چیزای برنی. مدر دیگه مثل لیموشین مثل کاهو مثل خود آب آبجوش بلرم یا چای تازه دمه کمرنگ دوست. حالا باید نگاه کنه به مزاجش مثلا چربی خونش بالاست چای سخت همین ساخت ایران خودم میذارم فشاخونش بالاست چای قیمز مثلا ما مادرم باشه گیری فروت هم مادرم دلست. فشاخونش بیار پایین درست چون عزیزی پشت خطه و من اونجا تلفن ها رو اینجا دارم میشونم و خیلی تماسات زیاده سرکار خانم دنیاوی از تهران پشت خط هستن خانم دنیاوی سلام خسته نباشه چواکه جهانی ولیا درخمتون سلامت سلام عليكم. سلام علیکم. سلام و رحمت. بفهم بسالاتون سلام سلام من سلام خسته نباشین به من یه مشکلی دارم پنجشیسال علو. بفهم بسالاتونی میشناند ویمیم می سامان. بفهم. بله. شش ش... سال پیش من نمیدونم چی شد یه روز بعد از ظهر دیدم فکر کردم شد به طرف راست. به طرف راستم فکر کردم شد. بعد فکر کردم سکترس و اینا دکتر رو در الان پنشی ساله میگذره حدود 8 -9 تا دکتر مغزرس ها با اینا رفتم همه میگن نه هیچی نیست گاهی گفتن استرسه و من چقدر دارو میخورم شبا ربونم میسوزه مثل اینکه که سوزن بهش فرو کنم میسوزه میپرم اخواف فکرم گاهن میپره زبونم و گاز میگیرم دیابتم دارم بعد نمیدونم الان چی کار کنم چه داری بخورم خوب بشم اصلا این مونده تو سرم مونده رو صورتم دیگه حالا لپ میزنه این تکیه من کشن لپ میزنه با صفت بگیرم فشار نمیدونم قضا بدم بخورم دست دست. الان سه چهار ماه هم هست بیشتر هفت سرم صدا میده گوب مثلا دست. ستاری نبزم میزنه همینطوری ناگهان صدا میده دنگ فشار خونم داری سرکافم دنیوی خانم دنیوی خانم دنیوی خانم من می‌خوام مرتب فشا... این صدا همراهه برحم خانم دنیوی فشار این صدا داره به میکشه. طرف راست من می‌کشه راست چپم این صدا رو میده الان نه مشکل گوش دارم تا کل صورت رفتم خانم دنیابی. فشار خونم دنیوی دارم مازار می‌بینم سرکار خانم دنیابی. فشار خون داری شما پيشال خون ندارم نه فشار خون ندید چند پشار خونتون همشه دوازده روی نه و این چیزا هست با آهن پایینتره خیلی ممنونم خواهم حتما به مشکلتون رسیدگی می‌کنن و من میگم ک... که من که اجازه جوابتون رو بدن رو دارید حتما حتما حتما من از که تلفن رو هم قطع کردم از کجا من قبل از اینکه تلفن آقای مقدم عزیز رو از اصفان بست لطفا در حد یک دقیقه سالتون رو پرسیم بزرگوار چهار دقیقه سالشون طول کشید سآلا رو خلاصه کنید ها رو سریع تر بدهیم آقای مقدم از اصفان سلام علیکم دخیمتون هست؟ سلام علیکم سلامتون بخیر دست شما درد نکنم در آقا. آقا این کلا سفید من اینا هون من دو هزار سفید روی جند. به اومد 62 شد بله الان دارو شیمیایی میخورم برگشته. چه است. چیزه استفاده کنم که این دو مرتبه بالا نرد فشار خونم هم همیشه 4 در 9 این پراست درسته خیلی ممنونم متشکرم. از تماستون شب خانم آبدی از شهر اسفهان خانم آبدی سلام شبکه جوانی ولایت بفهمت الو الو سلام بفرمی در خیمتون هستی خانم مابدی صداتون ما داریم بفهمید الو سلام علیکون سلام علیکم, علیکم، بفهمید میخواستم برای سو... صداتون داخل استدیو هست سلامت باشید من می‌خواستم من برای فرموئیس برای فرموئیس صورت صورت... روی صورت. روی صورت چشم. حتما متشکرم واسه صوتتون ممنون متشکرم خواهش می‌کنم یه نکته دیگه من دوباره تأکید میکنم صدا گیرنده‌هاتون رو ببندید بزرگوارا لطفاً سآلاتون سریع بپرسید لحظه ای که وصل میکنند دوستان اتاق فهمون به اینجا سالتون پخش میشه بله آقای معماری از کرش که تلفنشون در حفظی برنامه قطع شد رو وصل میکنیم آقای میماری سلام در خیمتون هستیم سلامت بشیم خستنواتیم سلامت که من یه جوان شست ساله هستم ادرافیان میگن که خیلی سرتون تکون میخوره خلاص کارشناس محترم میخوام ببینم چه باز بکنم لرزش محترم. دست هم دارید آیه لرزش دست هم داری؟ چی دارم لرزش دست نه نه نه لرزش دست خیلی کم درست دوست مرسی از همراهیتون جوان گرامی با خب شما تک دلشون جواب بوده آجا خب خانم دنیوی از تهران که خیلی نگران این بیماریشون بودن که انشالله شاءالله من شفاشون بده فکر می‌کام دیگه توضیح کامل رو باشه خودتون دیگه آجا فکشون یک دوستو که از خواب و سمت تراست شده بود ده. چند تا دکتر هم رفته بودن شواظ زمانشون میسوخ سرگیجه و سردرد و دیابت هم داشتن آجا این نکته بود که چربی خون بله, بله. خونم شما است که باید به سه متخصص مراجعه کن یک متخصص مغز و عصاب. دو متخصص اعصاب و روان سه متخصص فک و صورت یعنی تروماتولوجی اینا به خاطر اینکه یک کم با هم فرق میکن گویی زعف اعصاب شدید این حالت های لمسی پیش میاد. گاهی عدم تعادل روانی خودخوری های شدید جوش های علکی بحث های علکی بی پایه یک و دو کردن ها جدر کردن ها های مکرر و مانند اینا نه تعادل مایه پشت پرده منج اینا تغییر کرده و فشار اضافی روی عصب هفتم که عصب صورتیه میاد حالا گای با لخته خونه گای با خود مایه پشت پرده مننجه و گای مسائل دیگه‌ای که پیش میاد مثلا ضربه تصادف حالا هر پس پیشه سه نوع متخصص باید مراجعه کن حالا ظاهر امر چون که حضرت خانوما احساساتشون لطیفه و غرورشون نباید شریه دار بشه ولی بعضی ها ممکنه به این نکات توجه نکنن و بیش از توان زن از او توقع داشته باشن وقت زریب درگیری ذهنش بالا میره خودخوری میکنه دلشوره دلواپسی داره افت پلاسمای خون میشه افت مایات خونی خودش دست پاش چنگ میشه به سر آمیانه قفل میکنه درست. در درزم تو بحث بیان مطلب حق خودش یا درخواست به جای خودش با ترس و لرز میگه لذا دوچار لکنت زبان هم میشم لذا هر سه اینا مراجعه کنه تا ببینیم مطلب چیه چون که قند و چربی هم داشتی خود دیابت هشت عارضی سوء داره بس. یکیش کرخی بدنه خوفتگی شدید بدنه، خواب آلودگی شخصه. اینا جزو عوارضشه. حالا اینجا قند و چربی هم باید بیاری پایین. قندت چجوری میاری پایین؟ یک عدد بادام تلخ صبح، یک عدد بادام تلخ شب. این بین روز میتونی نصف استکان عرق کلپوره بخوری. اگر همیشه سال بدن داغه و کف دست پا داغه میتونی اناب و تمرهندی و آلو بخارا به نسبت مساوی کنی تو آب بخسونی هر روز از این خیسنده یه استقام بخور. و اگر بدنت همیشه سرد کف دست تمیخه سه عدد قندخونت فرز کن زیر دیویسته سه عدد تخمه هندوانه حنظر رو همون وقتی که میخوایی بخوری خردش میکنی تو کپسول خالی یا خمیر دور نونسنگک گرد میره که تو معده باشه، شد خونت میاره پایین پانکراس لازم معده و فعال میره مال چربی خونت باید ببینی نوعش چیه آسونش اینه که یه ما شیوید با نهارت میخوری یه عدد کدو مسما که کدو خورشتیه با پوستش به صورت خام یا بخار پس میتونه رنده کنه تو دوغ شیرین کم چرب میتونه همجوری بخوره یا با سالاد کاهو بخوره همین دو تا رو بخوره کافیه چربی خونش هم میاد پایین اون دیگه باز آزمایشات بعدی است که مال آزمایشات خونه که چه مقدار بالاست بعد آنزیمای کبدی چجوره بعد اضافه وزن داره نداره تراز سنی چقدره شغلش باز اونها مسائلیه که باید بیشه متخصصین مراجعه آی مقدم از اصفهان گفتن فراجوا یه کم کوتاه بگیرتون بعد تلفن‌ها برسیم تلفن‌ها خیلی حجمش زیاده گفتن که گلبول‌های سفید خونشون خیلی زیاد شده حالا گفتن دو هزار. الان برگشته واسه داروشیمیایی یه راهکار طب مانم. از ریس انکولوژی یا سرطان شناسی تو اقسام سرطان‌های مربوط به خون که هفت تا شمارده میشه هم تو اصول طب داخلی هاریسان و هم تو طب داخلی نلسون مطالبی هست مامونه حتی بعضی از پروفوسور های ایرانی ما که متخصص قلب و اروغ و در سرطان شناسی کار کردن مثل پرفسور حاجبی مطالبی دارن پس اینجا اون داروی که تجویز شده زیر نظر متخصص بیماریای خون اون رو باید مصرف کن چیزایی که دامن میزنه به این نوع سرطان ها باید صد درصد پرهیز کنه مثل فست فودها یا غذاهای صنعتی از سوسیس و کالباس، و همبرگر باید پرهیز کنید. صد در ها، کنسروها، ها، پیتزا، مرغ کنتاکی. همچنین غذاهای مونده یا آلوده. و همچنین اسانس‌های شیمیایی که هفتاد نوعه 20 بیماری میاره. و یکی هم آلودگی های خونیه و ترش شدن خون یا بلغم سیاه و اسیل اولی که بالا میبره اینا رو باید اشتناب کنه اشتناب کنه حالا داروهایی که دکتر محترم داده جواب بهتر میده تو بحث سرطانهای خون یک داروی بسیار مهمی که هست گل همیشه بهار خارجیا میگن کالاندولا همچنین شلغم آنها فصل پاییز بحث شلغم پس قاشق چای خوری پودر گلبرگ های گل همیشه باهار یا کالاندولا این رو تو نصف استکان آبجوشه جوش هم هم بزنه بخور تو بیس ساعت یک بار دوازه ساعت فاصله شد صد گرم تا دیویس گرم شلغم به صورت آب شلغم چه بهتر به صورت شلغم پخته ولی بخار این اینم خوبه لظام متخصصین ما هم تو قسمت سرطان شناسی در بعد گیاه شناسی و طب مکمل مثل دکتر مرتزا صفایی مثل دکتر فری معطر در گلچین جامع از گیان دارویی و عطاری ایران تو قسمت سرطان شناسی تقریبا سه صفحه بحث کرده آخر صفحه دومش تو قسمت ساعتان شناسی همین دو مطلبی که خدمتون گفتن بیان شده وقت بحثای پزشکی دقیق تر تو انکولوژی میتونن به طب داخلی هاریسون مراجعه کنیم دوست یا هواشی که ما بر اصول کافی زدیم جلد دو تو قسمت چیزهایی که سبب افزایش خون و نارسایی خونی میشه که حفنو ایشون ما اونجا حاشیه داریم و تروایاتشی روایات شیعه اصلا بیان شده درست. اونجا هم میشه مراجعه درست. کرد که سی دیای صوتیش هست درست. درست. خانم معابدی از اسپانیا بت ایشون من عذقایی میکنم پرمک هم داشتن قرار بود من امروز پرمک این موضوع رو بخونم قبلا هم در مورد این موضوع چند تا پرمک داشتیم که توفیق نمیشد بخونیم برای پرمویی صورت بانوان اشاره دارن بلده, بلده. مشکل بزرگیه اصلا دیگه براشون تو بحثه جنتیکی باید درمان جنتیکی کرد به مؤسسه رویان جهاد دانشگاه تهران مراجعه کن یک بار دیگه نه بحث لیزر درمانیه که پیازمو رو با اشعه مستقیم لیزر که تیفش خطیه می سزنن. اما درمان گران قیمتیه ضرر نداره جوان؟ عوارزش کمه کم چه کم. متخصص پوستمو باید بره؟ درست. یک بار دیگه درمان هست با طب مکمل و گیاهی مثلا تو کتاب تحفه حکیم مؤمن از دانشمندان دربار شاه تحماس به سفری اونجا داره تخم مرچه مثلا فصل باهاره میرن به صحرا و, و دشت و اینها کوه وقتی که یه رکبار بارون میاد جا آب نفوز میکنه به لونه ها بعد که ابرا میره کنار هوا آفتابی میخواد بشه اینا تخماشون از توی در میارن رو سطح خاک پخش میکنن که خوشه حالا اگر هر تار موی ما این تخم مورچه رو جاش له کنیم جای ساقه مو جای خروجی تارمو پیاز مو رو از بین میبره دیگه تا آخر آمر اینجا مودر نمیاد این درمان رایگان ولی سختیه بله دارم میگم حتما... مزو اینی که الان تو بازار هست یا عطاریا که روغن تخم مورچه میفروشن توش وازلین به ازیاشون تری گلیسیرید پارافینشن چی گلیسرین پارافینشن یه چیزی هم بود میزدن اصلا خالص نیست درست فقط خالص بشه ها خالص کردن میگم اینم این خاصیتش درست بعضی چیزها هم هست که مربوط به کشورهای اطرافمون هست و یا مربوط به کشور آمریکا هست های خاصی هم هست البته هر کسی ادعاش زیاده هیچکس نمیگه ماست من ترشه میخوام بگم اونا مثلا ادعاشون زیاده که میگن دیگه اصلا در نمیاد بعضی مسائل دیگه هم هست که اگر برای بدن مزر باشه و اونا حکم کراحت و کراحت شدید و حکم حرام پیدا میکنه دیگه اون قسمت ها رو باید از مشتعل ده صالحتون سوال کنید مثل مطالبی در رابطه با تاتو و این حرفا و اینها. حجا جوان ساله سالمون از کره جناب میماری پرسیدن که تو میگن که سرشون زیاد تکان میخوره لرزش دست نداشتن و من چون اون بیماری اسپشیالام نبود دقیقاً بیماری هست که باشه آره درشه خب بره. سرشون زیاد بله حالا اینجا مومن چون که جوان قدیم هستی این گوینده که جوان قدیمه اشکال نداره عمو ولی باید سنت در نظر بگیری سنت الان توی چی عمو تو چرخه حیات انسانی تو بحث زیستشناسی ما دیگه کم کم من و شما داریم به آخر خط میرسیم انشاءالله همیشه عمر طولانیه با آفیت داشته باشیم پس طبق سنت ماها قنده شیمیایی خوردن زرد چربی های با ترانس بالا خوردن صد درصد برات بده شما الان هم احتمال رحشه هست هم احتمال لقوه یا بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت پس این دو تایی که گفتم حتما باید ترک کنیم کاتالیزور مجاورتی که اینها رو تشدید کنم نباید بخوریم مثل ارسانسای شیمیایی حالا داروت دو چیزه هر روز یک استکان آب انار شیرین یا یک قاشق پلوخوری رو به انار شیرین دوازده ساعت که گذشت اینجا هفت عدد آلو بخارا تا چارده عدد بیشتر نه گایی مونی مزمن هم داره مثلا بیشتر نه این دوتا داروی درمان رعشه و لرزه های غیر اختیاریه درست بله اینشالله همیشه با افیت باشن همیشه جوان باشن آن بشون تودانی با افیت اینشالله خدا شما جوانهای قدیم رو هم برای ما نگهت رزی بس. سایه شما موضوع گواران باشیم خب میریم سراغ چهار تماس بعدی به من توی گوشی اعلام که خانم فرایی از احواز نمیدونم هنوز پشت خط هستن یا نه شما را من یک بار دیگه میخونم بس شماره خانم فراهی از احواز تاجر خانم فرخی سلام خسته نباشید چای جهان جهانی ولایت سلام سلام آقا من این سال باشه خ... چند تا سال البته در خدمت هاجا بعد شوهرم حدود 49 سالش هستم بعد 6 قسمت قلب از باز پزشکی به چیش قسمت فرمودن که تقسیم میشه بله بله. تو وپنج درصدش بیشتر کار نمیکنه برای برای بقیش که کار بیفته چکار کنیم با توجه به اینکه دیابت دارن و فردا عمل قلب باز دارند این یکی یه مورد دیگه این که هفتاد و نه ساله هستن سنگ کیسه صفرا بسیار متعدد درون شون دیده شده ایشون هم دیابت دارن و پوکی استخوان خواهر بیس ساله دارم استان هم دارن و عمل فوری با خواستن انجام بدن ولی برایشون مقدور نیست همرا با خون ریزیه یک چیز دیگه از سوالانه ممنون هستم لطفا کردم متشکرم ممنون خب من قبل از اینکه تلفن‌های بزرگواران واسه لطفاً یک سوال بپرسید من الان صد سوال رو نمیتونم از خدمت استاد بپرسم و یک سوال رو میپرسم بقیه جواب بتونیم بدیم آقا آخوندی پشت خط هستن از زاهدان تماسشون رو واسه میکنم بزرگواران به استدیو آیا زاهدی سلام شرک جهانی ولایت بفهمید. آیا خوندی از زاهدان به بش من ارخواهی میکن. آیا خوندی در خدمتون هستیم بفهمید. صد این صد گیر این باید ببندید بفهمید آیا خوندی؟ من قطع می کنم خطشون رو صدای گیرنده رو ببند... ببندید و صدا رو از تلفن داشته باشید. خط بعدی رو و من آیا خوندی رو بعدا حتما سریع دوباره بگیرم تماس بگیرم سری ما وصلشون کنم خط بعدی دوستان اتاق فهمان. برای ما آبست کنم. ای توام وقت سوالش جواب بدم بذارید ببینم. خب خم میسکی؟ نیستش. خب من یه دیگه شما تلفن رو میگن اعلام کنید. دویست و دویست پنج چهل و یک سیزده، دویست و پنج چهل و یک نه، و پنج و یک خانم فرایی رو جواب بدیم؟ اولش چی بود حاجو؟ اولیش سوالش من از خانم هاجا به من تو گوشی میگن سوالش چیزو فنی رو جواب دادن هاجا هم در مورد افسردگی مزمنشون پاسخ دادید و هم بله. در مورد چیزو فنیشون بله بله. پاسخ دادیدش بله. خب سمبولوجی بود و بله گل سرخ مرد 49 ساله 35 درصد قلبشون کار نمیکنه هاجا میگن تلفن داریم اجازه میدید تلفن رو بس کنیم دیگه باید بریم کلا تو پاسخ خانم کی خاستی از قم سلام سرکار خانم، شرکت جهانی ولایت بفهمید سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. ببخشید، من میگرن دارم، خواستم با آقای دکتر صحبت کنم. با م... مشکل میگرن دارید فقط؟ بله، میگرن دارم، بله. همش سرم درد میکنه و بعد تو گوشم هم صدا میکنه بله. توی گوشتون هم صدا می‌کنه. باشه مرسی از تماستون ممنون، متشکرم. خواهش میکنه. خوب، حالا بریم پاسخار رو بدیم تا باز ها رو دوستانمون بسلط مردی 49 ساله 35 درصد صدق قلبشون کار نمیکنه دیابت هم دارن متاسفانه انشالله که عمل خوبی هم داشته باشن فرد عمل قلب باز دار رگهای گرفته عروغ کرونر با مصرف آب کرفس خام باز می شود بودن قلب با مصرف آب به رسیده به رسیده تازه آبش بگیرین بین یه استکان تا یه لیوان بخوایم بخوین قوتا للقلب الضعیف که تو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیابت هم دارم دیابت هم دارم بعده اس که خانوادگی هم دارم چون پس شاید دیابتشون بی و جنتیکیه بهترین داروش پنج عدد تخمه هندوانه حنزل به خاطر اون دوتای قبلی این میشه پنج عدد پنج عدد, پنج عدد تخمه هندوانه حنزل این تخمه هم... هندوانه حنزل رو یک توضیح هم بدید هندوانه میکن. حنزل خربوزه معاویه میگن هندوانه ابو جهل هم میگن سمیه نباید بخورن خود هندوانه اس... بله اصحال استفراق میشن دلوقتي. نباید بخوریم. بعد از تخم موضوع خود داروگیاه بله ها... بله دارم بله عطاریای دارویی دارم مرکز های تحقیقات داروییهای ایران دارم روی زم هست قهوه‌ایه درست همون وقتی که می‌خوای بخوری همون وقت با نوک چاقو چیزی یکم خردش می‌کنید داخل کپسول خالی یا خمیر دور نون که سبوت داره میذارم که تو معده باشه به گلو اینا نخوره اسف میاره تنگی نفس تو معده باشه خوبیش اینه که پانکراس و لوزول معده تو چکا کنه فعال میکنه در ترشوه انسلین کم کم احتیاجشون به انسلین تزریقی یا قرصه زد قندخون کم میشه خود این ناراحتی قلبی خودش یکی از عوارض قندخونه درست. آریتمی های قلب بله. یکی از عوارض همین دیابت کمکاری کلیتون یکی از عوارض همین دیابت پس خونو که به مختزای سننت بین 110 تا 120 بیاری یا مثل یک جوان 18 ساله بین 90 تا 110 بیاری بسیار عالیه اون نارسایی دیگه اجاق کم, کم میشه یه تلفن رزرو دوستان اتاق فهمان گفتن دارن اگر هست که وست کنم وگر من ساله آی اکبر است از تهران چون ما البعد وفاوت بشه آجا چهارت خطمونو بگیریم آی اکبر اکبرپور سلام شبکه جهانی بلایت بفهم سلام علیکم شبه شما شو بشه دخمت نسی <laughs> داخلمتون هستم سوالتون بپرسید بله. من مدتی یک سالی هستش که گوش سمت راستم سوت می‌کشه صفراوی مزاج هستم گرم و خشک بله لطفاً اجازه پاسو دارم ممنون می‌شم گوش سمت گوش سمت راستم باشه چشم خیلی مشکوره خواهش می‌کنم متشکرم از یه تماس دیگه ما میتونیم. واسه کنیم که چهار تماس تماسو بس کرده باشیم لطف کنید که به ما بدی تماس بعدی رو حالا به من اعلام نکردن دقیقاً سلام که جوانی ولایت بفرمایید سلامت باشین سرکار خانم بفرمایید صداتون داریم صداتون روی آنتن بفهمید. بله بفرمایید من یه سوال داشتم بله الو بفهمت. صداتون داریم بفرمایید بله برادر من 24 سالشونه مشکل فشار خون داره بله بعد هر جا بردیم گفتن مشکل سارکوما ساریتوم میخوام درمان طبیشو بدونن طبی اسلامیشو طبی اسلامی شو اسلام. ما متوجه اون ده ده. اسمشون نشدم شما انشاءالله خب متکلم از تماستون از کجا تماس میگیرید از خب نشدیم که از کدوم شهر ایران تماس گرفتید. خب، اجازه بدید ما اول بریم سال خانم یتخاستی رو بپرسیم. خب، دکتر جواب میدی. خب پس اون سالی که گفتم مادر شوهرش سنگ سفرا که جلسه پیش گفته بودید، مثلا درباره سنگ سفرا، آجا قرصای ضد حاملگی نخورم، کافئین زیاد نخورم، هر روز پنج تا هفت عدد تمر هندی نمک توی لیوان آب حل کنم بخوام. فلزت سفراش من از بین میره؟ اگر سنگ صف را دارن جوشانده هسته خورما به جوشونن سه روز روز یه استکان تازه جوش باش مصرف کنن سنگ صفاشون هم خود خوهرشون هم خانم فراهی مثل که یو بوسد ایشتوانه کنن بواسیر داشت بواسیر داشت عمل کنم اینشالله یک روز باید قشنگ توضیح بدم بحث بواسیر یا بیماری همورایی داخلی خارجی خونی غیر خونی بادی خونی بود این موردش خونی بود خونی بود؟ بله بله در بواسیر خونی داروش یک با نهار و شام یک ماش تره بخور چه تره زراعی سبزی خوردن چه تره وحشی که تو خطه شمال مازندران به و خطه تربت جام و صالحاباد این وره طربت حیدریه خودرو زیاده درست. حتی والدین اعلی قلبی هم خوبه و انسداد عروق کرونه نمیذاره پیش بیاد دست. پس یکی تو جیره غذاییتون تره باشه یه ماش دوم تو جیره غذایشون خرفه باشه خرفه بقلت الزهرا لینه المبارکه بقلت لینه سوم باید چیزایی که یوبسد میاره ترک کنیم مثل نان سفید، کیک سفید، نون ساندویچی، مشابه های گازدار، هسته انار، توفاله سیب، توفاله به، تا 16 مورد چیزایی که یوبوسد میاد، حاج اینا رو باید ترک کنید. پس تره رو با نهارشانش تره میخواد. یکی دیگه از چیزایی که خوبه، در درمان بواسیر خونی پودر سماق تازه سماق میگم؟ سماق یه قاشق چایخوری صبح میخوری؟ یه قاشق چایخوری خوری هم شب قبل خواب بواسیر خونی خوب میشه حالا باز اونا اقسام دیگه شدن با روایات هم اینشالله میگه سرکار خانمی از قوم گفتن که میگرن دارن سرشون درد میکنه و تو گوششون صدا میده فقط 6 دقیقه وقت میگرن قضاهای ترش قضاهای تند و تیز نور شدید یعنی در پیک بار نور خورشید نباشین، نورهای شدید لامپای دیویست لامپای مدادی یا پرژکتور نباشین، تو تبایی گل درمانی و عط درمانی گل برگهای صورتی رنگ گل محمدی رو رو چشماتون رو میذاریم میبندین تی این تاریک خونه بیس دقیقه دراز میشی سردر ساکت میشه تو بحثای خوردن گل راعی یا چای کوهی یا هوفاریقون یا قطره های پیران به شرطی که حامله و بچه شیرده نباشی بیست و قطره الا سی و قطره در یه لیوان آب صبح بخور ساعت شیشانیم قبل این که بری سر کارهای خونه یا کارهای بیرون پنج تا فائده برای شما حضرت خانوما داره دوتاش مربوطه به شما میشه یکی بحث دیسمنوره یا سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک دوم سردردهای میگرنی که چارده نوعه سه نوعش تو ایران شایه و این قطره های پیران کافیه درست آقای اکبرپور اگر اشتباعه نکنم از تهران گفتن مدت یک سالی که گوش راستشون صدا میده و اگر شت کم گرم ازذاش طور که توضیح دادن. تا حالا چند تا سوال شده درباره سوت سر حالا دو طرفه از هر دو گوش یا یک گوش. بعضی این خانوما هم سوال داشتن. سوت سر چند علت داره. گاهی مجرای استاش از گوش میانی به حلق بسته شده. باید پیش یه متخصص گوش و حلق و بینی. مراجعه کنی تا چکاب کنه آیا واکس گوش اینجا رو گرفته آیا افونت کرده اینو باید مراجعه کنی و معاینه کن که مجرای استاش از گوش میانی به حق باز بشه سوت سرشون هم خوب میشه یک بار دیگه سوت در سر مربوط میشه به فشارخون بالا مخصوصا فشارخون بالای 16 و اینا وقتی هم که سجده میرن این قسمت فر موی سرشون بین پشت سر و بالای سر وقتی سجده میرم تو نماز مثل کسی که آروم آروم چکاش بزنه ضربان داره اینجا فشار بالاست باید فشارخونت خونت برسونی به حد نرمال یا 12 هشتم یا اگر حامله هست مثلا خانومه در ماههای هشتم و ماههای نهم حاملگی بهترین فشار خون یازده 11 رو هشته ه این یعنی فشار انقباضی قلب 11، فشار انبساطی قلب 8. پس باید فشار خون بیاد پایین. اکثر افراد مخصوصا حضرت خانوما اینها از همی... کم خونی. من یه استخوب بدم اینکه یه عزیزم پرسیده بودم مشکل فشار خون همین همینجج الان تو مذهب فشار خون مشکل فشار هم بگید راه حلش دو سه تا ندارین فشار خون بالا رو میتونی کم کنی وسط ناهارت میوه گریب فرود بچه های استان فارس میگن دارابی بچه های خطه شمال ایران میگن سرخ. اسم علمیش گریب فرود میتامیسش یک یکم از پرتقال بیشتره ولی فشارخونه میره پایین وسط نهار یک دونه میوه گریب فرود بخور وسط شام یا بعد از شام یا قبل از خواب شبانه یک قاشق بخوری پودر شنبلیله یا به همراه غذا یه مش شنبلیله تازه, تازه فشار خونت تا میاره به حد ده دوازه یه اون... بحث گوش اما گاهی سوت سر به خاطر افت فشارخونه و کمخونی شدیده چشما سیایی بره دواری سرداری کف دست باریه مطای داقشه یا یخ بشه ابسورده باشی، بیرمق باشی، زود اکوره دربری، سوئزن پیدا کنه اینا عوارضای کمخونی و افت فشار خونم اگر داشته باشه آقا مثلا فشار خونش همیشه زیر ده و زیر نه باشه اصلا هوشیاریشون هم میاد پایین و بیرمقیشون زیاده. گاهی سوت سر به خاطر کمخونی و افت فشار خونه. حالا این کمخونیتی میاری بالا با عسل با آب سیب با خرما تو بحث فقر آهن تو بحث فقر ویتامین ب دوازده یک روز در میون فعلا تا دو سه هفته سردست گوشت گوسوند میخوری به صورت کبابی یا پس. چون بالاترین درصد ویتامین آ و ویتامین به دوازده تو گوشت قرمز به سنت رسول الله هم عمل کردن همچنین مؤمن گاهی کم خونیش به خاطر فقر اسید فولیکه تو جیره غذاییش کاهو بذاره، لبوب بگذاره همچنین خرفه فقر اسید فولیکش هم خوب میشه یا اینکه میتونه مراجعه کنه پیش متخصص بیماری های خون یا متخصص زنان که بعد حتی این قرصای خارجی است که هر سه داره. مثلا آهن هم داره، فروس سلفات هم داره هی هم داره هی اوسینم داره میتونه مثلا اونو مصرف کنه یا همین داروهای طرح جنریک دارو شیمیایی ایران داشت. یا همینایی که به صورت گیاهی بعضیاش از روایات شیعه و بعضیاش از طب مکمل و گیاهی گفتم مصرف کنه داشت. حتی میتونه شیره خرما شیره انگو شیره توت قاطی کنه که فشارش میاد بالا بله بله بله. و هم کم خوب, خوب میشه خیلی ممنونم من ابتدایزه میخوام روزهای کنم از شما بینندگان از دارم من هنوز خطای تلفن همینطوری زنگ می‌خوره متاسفانه نتونستیم پاسخگو همه مشکلات و سوالات شما آرام باشیم پنمکارام نتونستیم که بخونیم اما بازم برنامه‌کارتون رو بفرستیم ان که برنامه‌ای بعد از ابتدای سم کنیم فقط پنمکارا رو بپرسیم که مشکلی و گرفتاری شما از جان رو بتونیم حل کنیم من اسم کسانی که تماس گرفتم و موفق نشدیم صدای عزیزشون رو در شبکه بشنویم می‌خونم سکر خانم ها تو توایی علیزاده از تهران خانم شکیبا از گنبد آقایان موحد از گنبد، شاکری از تهران، سلطانی از گرگان، شاطری ا... از تهران، آقایی از شهر مشهد مقدس و آقای نبوی از زنجان و چند و چند اسم دیگه که من همینطوری میانه برنامه از اذان اسماشونو میگفتن و من نوشتم ان که با اینکه زمان برنامه رو زیاد کردیم و نمیتونیم هنوز و هنوز پاسا کوشمون بزرگواران باشیم هر مشکل و بیماری که در زندگی هر مسلمان و هر انسانی وجود داره برطرف بشه آج نزدیک به انتهای برنامه این ما فهم میکنم دو دقیقه وقت داریم دوست هم یه دعای خیلی خوب برمالش تو بشه این شهبای عزیز اللهم صلی على فاطمت و ابیها و بعلیها و بنیها و سر المستودعی فیها به عدد ما احاط به علمك اللهم صلی على محمد و آل محمد و عجل فرجهم هم خیلی ممنون اللهمش به كل مریض شف امراضانا و مرضانا و حق محمد و آل محمد همه رو به خدای بزرگ میسپارم ان همیشه با عافیت و امنیت باشه متشکرم آقا اسخای می‌کنم از استار خب یکی دیگه از برنامه‌های آیین سلامتی شما این برنامه آین سلامتی به اتمام رسید پایمکاتون هر برنامه‌ای که ما جدول تمیریم افسایش پیدا می‌کنه 3059 ده پل ارتباط پیمکی ما هست با شما بزرگان در مورد برنامه هم اگر نقد و پیشنهادی دارید بفرستید درباره بهتر شدنش امیدواریم که بتونیم تعداد برنامه رو در هفته اگر بشه انشاالله زیاد میکنیم پاسخیی هنوز خط تلفنی من همینونطور که می بینم تماس داره پاسخییی شما عزیزان باشیم نکته خیلی مهمی که فکر میکنم به درد کسایی میخوری که مشکلی داشتن ساالی داشتن پرسیدن نتونستن تو زمان برنامه پاسخشون رو یادداشت برداری کنند میتونن به سایت اینترنتی ما wwwww.یتt.com مراجعه کنند ظرف چه ساعت نهایتا سه روز متن برنامه و فایل و فایل صوتی اون قرار میگیره در سایت میتونید دانلود کنید و بردارید و پاسخاتون رو یادداشت کنید. انشالله که از برنامه های آین راضی بوده باشید بتونیم که با روال برنامه ها آشنا بشید هر بار تماس میگیرید پثالاتتون پاسخ... کوتاه بگید تا بتونیم پاسخ های کامل رو از حاجاقه بپرسیم گیرنده هاتون رو همساش قطع کنید تا چهارشنبه دیگر برنامه آین سلامتی دیگر و با امید اینکه ببینیم روی حضرت مهدی اجهل الله تعالی فرجش شریف و دعا برای سلامتی حضرتش شما بزرگواران رو به خدای یکتا می‌سپارم خدایا رو نگهدار